چنانکه خاطرنشان شد بحث درباره تخصيص عام به مفهوم بود چه مفهوم موافق به اصطلاح و چه مفهوم مخالف و کلماتی نقل شد و توضیحاتی داده شد آخر مطلب به تحقیق و اینجا است که آیا معنی شده که مشهور علما چه سنی ششعه غافل که عام بلکه مفهوم مخالف تا موافق تخصیص میخواد به عبارت دیگر جایی که مفهوم ثابت باشه نا روکن باشه آن تخصیص میخوره البته از عالم اصولین متأخر ما تفاصیلی دادم راجع به اینکه که چجوری اسباس بشه و تبره همون کیفیت ثبوت مفهوم تخصیصی گیری و اما تحریر مسئله حق در مسئله من توضیحا از کردم اما مفهوم به نظر ما در نصف یعنی مفهوم هست و اینها که لحظی است لا الله و اما در بقیه موارد مفهوم بر اساس مقدمات حکمت تمام میشه یعنی اون انحساب و مقدمات حکمت اثبات میکنه در نصف مفهوم شرط در نظر مفهوم وقت که قائل نیستید اون تفاصیلی که گذشت باید به عاده صحبت ندار. اون اونجایی که مفهوم بناس به مقدمات حکمت ساجت بشه اونجا تحسیل داده اگر به بعد باشه خب به طریق اولا اگر به مقدمات حکمت به معنی اینکه که مقام اعتبار باشه به طریق با اولا حالا مقدمات حکمت معنی در نظر گرفتر مقام بیان خصوصیات که توضیحاتش گذشتی اگر مقدمات حکمت هم باشه به نظر ما مفهوم معدمه و اضافه بعد اون نقطه عام که در کل ادله هست خود مفهوم هم یه خصوصیتی داره اینطور نیست که مفهوم خصوصیت نداشته باشه مقدمات استدلالی با که برای اثبات سلام اصلا رو حضور با سلامی اولا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم وقتی صحبت استظهار هست در این جوجه ها و میگیم مثلا این معنا ظاهره یا اینطور فهمیده میشه مراد ما از استظهار طبیعتا استظهار و عرفیه. بسیط نیست مثلا از اون لفظه آف بگه آف یا. خب شما اینجا از لفظه آف این معنی عرفی میکنه. در استظهار میکنم در این مباحثی که ما در ظهورات مطرح میکنیم قیل از اون اصل ظهور و عرفی. چون که معنای استظهار ظهور عرفیه و, و, و ابتداءن مثلا ظهور عرفی رو متخذ میشیم و اضافه بر او بحث ما یک ظهور قانونی هم هست یعنی بحث این مثلا ما در دنبال در حقیقت اگر ظهور عرفی رو هم مطرح کنیم مقدمه است برای ظهور قانونی عمده و نکته اساسی ما ظهور قانونی است و این ظهور قانونی با تعمل و توجه به این که این کلام از مقنن صادر شده و ارزش حجیگرد داره. یعنی این حساب بحث میشه. یعنی بحثی که معلوم میکنیم این از که قانونگذار این تعدیخ رو به کار برده. حطلت دیگه و مخصوص کلام این از که قانونگذار به تمام لوازم قانونی و قانونی اونی که در مقام اعتبار لحاظ میشه به قانونی که در اما واقع یا به عرف یا غیر عرف یعنی تمامی خصوصیات در ذهن مقنن وجود داره و اونها رو در نظر می‌گیره خود تلازم بین احکام یا تسانخ بین احکام رو یا ترابط بین احکام رو در نظر می‌گیره با در نظر گرفتن این خصوصیات با کلام رو تفسیر بکنیم نه اینکه فقط یک ظهور عرفی بسیط باشه چیزی یا عقیار بگیم لفظ آبی یعنی چی مثلا این نیست اینجا جواب بحث بحثه قانونیه یک چون بحثه قانونی نیست و بحث این است که یعنی موضوعه کلام این است که مقنن به تمام خصوصیات و زرافتهای کلام اطلاع داره این یک دو لوازم و تلازمات و ترابط بین اونها رو هم در نظر میگیره. اینطور نیست یعنی به عبارت دیگر حرز بین است که در یک قانون واحد یک انسجامی بین مواد قانونی وجود داره اون انسجام رو هم باید در نظر بگیریم اینطور نیست که هر رو جداگانه معنا بکنیم یک انسجام قانونی در بین تمام یعنی یک روح حاکم بر کل مواد قانونی وجود داره با اون روح حاکم ما باید تفسیر بکنیم یعنی نکته ای رو که ما در این بحث میاریم اینه و این فهم این نکته اضافه بر اینکه بر برمیگرده به یک جهاتی که خود مقمند در نظر میگره باید ظهورات لحظی هم به حد کافی با فهم این نکته در رابطه باشه اون ظهور لحظی هم یعنی اگر فرص مثلا این با مثال خاص وجوب رو بگیر و وجوب یک لوازم مقامی داشته یه لحظی رو باید به کار بره که بتونه کل اون مطالب رو به اصطلاح افهان بکنه این طور نیست که مثلا محدود نواشه هر لفت و لذا این منشأ شده که در خیلی از جاها رو خصوصیات الفاظ زرافت های الفاظ حساب شده این حساب های خصوصیات الفاظ شاد ارش اقتداعا منتفض نشه اما با در قطعه قانونی مطلب در هست بنابراین خوب در نظر بگیری ما مرادمون از استظهار در مثل مسائل یک استظهار قانونی کما اینکه در موارد استظهار قانونی خواهدیدی هم داریم یا لحظ ظهور داره یا نداره اون رفت میشه اجمال وقت اجمال که شد اون رفت برمیگه باز قوانه این که ما داریم باز برمیگه به با اصول عملی نقطه به اصول عملی منتقی میشه در از اون نکتهی رو که باید در نظر بگیریم برخورد استظهاری تارتن لغهی صرف و قرفی صرفه گاه وقت برخورد استظهار قانونی وقتی قانونی شد باید تمام خصوصیات قانونی در نظر بگیریم این نکته وقتی در نظر گرفته شد وقت برای نتیجه گیری نهایی نسبتاً آسان میشه ببینید من دیگه شد مسالله گذشت یه میخوام تکرار بکنم. یه مقداری از کارهایی که اصول متخر ما مثل معغز برروجی بیا های ناینی یا مجموعاضات کردن در حقیقت برگشتش و همین بود که اون ذراافتت ها و نقصه های قانونی رو در نظر بیاد و درست هم هست این مطلب ببینید وقتی یک عام میامم از مثل اکمل کنم این خب بودکت که یه من قانونی ماده نیست. این عام ظهورش غیر از می حالالا عموم، که ظهور لغوی هست ظهور آشیه است خلافاً به ناینی که ظهور در عموم رو لغوی نمی‌دونه در مقدمات تکامل و حساب کتابی نه ظهور در عموم لغوی لكن اضافی بر اموی انتقجای قایق قانون، های قانونی هم داریم اون فهم قانونی این است که عالم بودن به ما و عالم بودن معیاره پس گویا اصل العلماء یعنی به عبارت دیگر خودش به لحاظ لحظی جهت اثباتی داره اما به لحاظ قانونی جهت منفی هم توش داره این دو تا رو با هم دیگه فرق بذاریم تکرمل علما این که عالم موضوع وجوب احرام این جهت اثباتی این لغت می‌فهمند اینه که اما اینکه فقط عالم بودن نقش دیگر یا لو پسر عموی من باشه پسر عموی من نباشه همسایه باشه همسایه نباشه فرصوی فاسق باشه فاسق نباشه شما چی میگیم؟ بگید اکرام شما شامل همه اینها میشه یعنی از اکرام علما ما در میاریم که خصوصیت ادالت شرط نیست یک جهت منفی داره یک جهت مثبت داره فرق نیم کنه زید باشه، امر باشه فاسق باشه، آزل باشه همسایه باشه، نباشه فامیل باشه، نباشه زن باشه، مرد باشه، جوان باشه ببینید. این هم تحن خانونی محلده. خود لفظ ولی عموم مانده دیگه خصوصیتی غیر از آلم این همین استظهاری بود که مرموم های هم قرده بودن راست این استظهار خصوصیتی غیر از آلم تاثیر نداره این عموم و شما یک مفهوم میادیم میگیم انجا اک زیدون انزار اک زیدون و اکر اموم از علم ها باشده فرصوی انزار زیدون الاله از کردید مرمواری خوی منطوق هم با آن معارضه توضیح داده شد که منطوق معارضه نیست اون معنا منطوق با چه قسمتی معارضه؟ با اون قسمتی که منفی بود جهت سلوی اکمال علمه بود چون جرد سلوی میگوه به علم کافیه اکثر علمه جرد اثباتی میگوه به علم جرد سلوی گفت هیچ نقطه ای غیرد علم نیست فقط علم این انذارک زیدون میگه نه نقطه دیگه هم هست نسبت به خصوصیت زیارت کردنش مهمه پس اون نقطه عظم العلماء شکست اون ظهور به اصطلاح ما اون حیبتش رو از دست داد اگر مراد مرحومای خوی از معارضه منطق این معنا باشه درست بدوید بله. این بود بودیجدی به عنوان دیگری مطرح کردن ایشون مولانا ما حاصل شده که از انزارک زیدون ببینید نه اینکه شاید ارخ این دقتها رو نمی کنه بله شاید ارخ نه اصلا ارخ قانونی اون اول چرا ارخ آمین بولن برای این منشه ارده ای با ارخ قانونی می که در زیده آلم آلم بودن کافی نیست ارخ دقت کنیم چون اگر کافی بود خب زیده من تو بقیه علم های شما شدید چرا گفت اندار اگر زیده بیان موضوعی چیه بیان عالم لازم نیست که چون عموم میگه که چه بیان چه نهام چه عالم پیش شما آمد یا مراد گفت اکمل علما البلد فرض کن اکمل علما و اکرام هم به پول دادن باشه فرض کن گفت که پول رد بکنه وا این اکرام به پول دادن باشه فرض خود خونش بیاد نبات بود بفهمه پول اصلا که نمیدونه احمد بود اکمل علما اونم نمی‌شینه فرستادن قضاوت قضاوت بود رفت کردن باشه قضا کتاب داره یه جور کتاب درسه منظور اینه که به چیکار این تذیه میشه تخفیص حالا شما بگو موضوع به زید چرا پیدا کرده که که میان چرا گفت انزار که زیدو به معلوم میشه تو خصوص زید نکته‌ای داره تو زیده آله. نکته داره اون نکته اینه که عالم بودنش کافی نیست خوب دقت کنید عالم بودنش کافی نیست یعنی چی یعنی خیلی دیگه هم بهش اضافه شود زیارت دیدن تو خونه هم باید بیاد اگر مرادش همه علما بود میگه که علما انذاروشه اگر مرادش همه علما بود اگر مرادش خصوص اگر اما خصوص زید خارج کرد این روشن شد ان این مفادش اینه پس اگر ما بخواییم درقتی می خواستم به دو محضره پیدا نکردیم قبولش نفرمایید. ما حرفون اینه نه در فهم عرفی بسیط در فهم عرفی خاص عرف قانونی در عرف قانونی اینطور میفهمیم که در زید عالم بودن تنها کافی نیست این تمام الموضوع نیست آلم بودن چرا گفت انزارکه اگر عالم بودن کافی بودن این دید چی بود؟ درسته. این یک نکته اضافی است که در بقیه تخصیص ها میریم این نکته این. این محبوب اینجا هست چون اگر گفت اکرمه علماء لا سکرم فستاقل ما تخصیص این خیلی واضحه یه می نداره دیگه لا سکرم زیدن الاله این هم تخصیص هی جهبه می نداره ما عرض کردیم اون دستیره که ما در اینجا داریم آیا مفهوم به ما و مفهوم یک نکته ای تو تخصیص داره که در نیست اون نکته ای که به نظر مازاره اینجاست نقطه, شده. نقطه که غیر از مفهوم با منطوق هم آمده به سراغ آله آم انایه کنیش ما خود بگم منطوق دیده اما در که با آم غیر از ملحوظ چرا دیگه اگر اون آم شکست نه ببینید نه, ببنی نه ببنی اگر آم شکست ببینی ما همینه مخلی بگیم اگر آم شکست شکست خور سلم منطوقش چیه زیده, زیده عالم آلم قسمت زیده عالم آم شکست خورد خب دقت بکن این آم شکست خوردی اون آم دیگه اون, آم دیگه اون خودش نداره اگر اونو حالا دید اون نکته بحث ما روشن شد یک از کلام آقالب اصولی ها گفتن مفهوم حجت مثل منطق چه با همونه همجوری که منطق میتونه تخصیص بزنه مفهوم همشوره اینا نکته بحث رو اینجوری وارد شده گفتم منطق خوبه در این باره بحث کنیم منطقاً من آره من دارم همین میخوام هم. هستم ما که قائل مقدمات یک هستیم اگر اجازه تقریر من تمام بشه ما وقتی در ارکایز نکته فنی و همیشه تو ها اون نکته فنی رو و رو در نظر بگیریم ما بگیم مفهوم حجت است مثلا در بیا حجتا تخصیص خور اون بحثه متعارفه هر جا که مفهوم صادق میشه حجت است ما می‌گیم غیر از اینجاست که تخصیص می‌زنه یا یعنی نه به ماهو و مفهوم بودن نکته خاصی هم داره یا یعنی؟ نه اگر به ماهو و مفهوم بودن نکته خاصی داشته باشه اون ممکن است ممکن از که حتی از بعضی از موارد تخصیص که داره این رد بکنه این لطافت بحثه چون مفهوم این رد بکنه همون مثالی که الان دیروز هم هست در وقت گذاشته اگه گفت اکرم الولما بعد گفت اکرم خدام الولما بعد گفت ببخشت گفت لاتو کرم الفسا بعد گفت اکرم خدام علمان ببینید خب این محروم موافقه دیگه اگه خدام علمان اکرامشون واجب باشه و رو آله به طریق اولا دیگه به فهم عرفی به, به ملازمه اقلی پس توچ اکرمه علمان به طریق اولاد خابه این محروم موافقه و صحبت اینه که اکرمه علمانی که مفهوم نسبتش با الله سبحانه رو این نسبت دو تا بحث اینه اینجا چون مفهومه بگیم تخصیص میزنه ولی در آمه منوز ما قاله به تعارض هستیم اینجا مقدم میشه این ضرافت بحث یعنی اگر ما داشتیم اکرمل علماء بلا سکرمل فسانه سوالش ما مقصود منوز, منوز رو در عالم فاسق تعارض دارم اگر هر دو ملخوز بودن دیگیم اگر یکیش منطوق بود مفهوم بود مثلا مفهوم موافقه چون اولویه اگر مفهوم بود به خاطر مفهوم بودن مقدم میشه به خاطر هم میشه اگر گفتین مفهوم حجت است مثل دعی و حجت خب تعارض میشونه 그죠 تعارض میشه که ظاهرا بحث ناگهان تعارضه ایشون میگه اکرم خدام العلماء بالاسفه من تعارضن در عالم فاسد چرا چون این محکوم بشه اکمال علمه هستون هم که فساخ ملحوظه با همدیگه سا آمون خصوص من ما نکته فندی رو این اردی چون در اینجا اکمال علمه ها را با اولویت در بید بگیم این اولویت کمک میکنه حتی تو مورد تا آرز هم مقدم بشه بر من برمه آه... هستید آه... نقطه فنیه بست داشت؟ پس نقطه فنیه بست آقایان گرفتن روح و جیت محبوم. ما گرفتیم چون مفهوم اضافه بر جیت یک نقطه ظرافت دیگری هم داره چرا؟ چون مفهوم همراه منطوق آمده آمده این همراه منطوق او رو تقریب بکنه سوال دیده اگر همراه منطوق نبود شد تقریب نمی‌شد. حالا همراه منطوق آمده همچنین اجازه این در مفهوم موافقت روشن شد. بیان تو مفهوم مخالفت گفت یعنی التی بگیم اینجا که مفهومه. اینجا هم مفهوم چون به خاطر که مفهومه هم ثابت هم برهان مقدمه. چرا این نقطه از کجا همه نه به لحاظ خود محکوم فی نفسه که به باشه به لحاظ این که اول منطوق حیبت آن رو برد بکرد مکنید شبیه از کلم چند بار از اشتباه ندونه شبیه اون بحثی که از قدمای ما قاعد بوده اینکه اگه دو تا حدیث داشتیم یکی معلل بود یکی غیر معلل یا معلل بود مثلا یکی بود که مثلا لا تأکل رمان یکی میگفت مثلا لا ترکل کل رو... رومان فیرنه هون مفیلون لرگ این جنبه اون تا آرزه یکی میگه لا ترکلی که میگه خود لکه بیگن اونی که معلل شده اون حدیث معلل اون مقدمه چون تکرر رو گفته چون اگه لا رمان رومان یک بار گفته اما گفت کل رومان فیرنه هون مفیلون دو بار گفته این تکرار رو خودش تقدم میاره. این بحث رو سابقا حد کرد انصابش پی شما سابق نی پس بنابراین اون نکته به نظر ما اینه چون اکثر ای علمان رو با آلم به ماه و عالم تأثیر داره اون جهت سلوی شو با فهم قانونی درست میکردیم این جهت سلوی به برکت منطوق رفت این جهت سلوی که فقط عالم به ماه و عالم تأثیر داره چون حضر بشید دیگه نگردون از اون به ماه و اون نکرد این به برکت منطوق رفت یعنی منتوخ اول آمان مثل یک بلوزر جادر حساب کرد آمد به شما نشون داد که عالم در خصوص زید در خصوص زید آلم به ماه و عالم تاثیر نداره روشن شد؟ همین که این کار رو انجام داد جرد سردی رو برداشت اون وقت مفهوم زنده دید که مشکل نداره یعنی اون آم تلاحیت قریبیتش از دست میگه نسبت به زید عالم دیگه تلاحیتش از دست میگه. این خصوصیت از مفهوم آمد دیگه حالا دیگه خیلی بحث نکردم چون میشه پس بنابراین به نظر ما یک مفهوم برای عام مقدمه شده محروم محروم چرا مفهوم ثابت فقط ببینید اجازه بدین با مقدمات حکمت فقط سلاط نباشه فر این با با مقدمات حکمت فقط انحصار بقیه رو بدون مقدمات باشه انحصار جهت سلبیه جهت ترخیص گفته شده مشکل نداره شما با مقدمات حکمت رو این لفظ بگن بن یعنی این مقدمات حکمت تعلیح و تعلیح و تعلیح به الا به معنای تعلیق و تعلیق به نحوه ترتب و به نحوه علیت بدون مقدمات حکمت این اینارو توضیح دادیم فقط انحصار انحصار چون همین یه جذر داره انحصار من سالب و بود دیگه به و انحصار توسط منظور شکسته شد انحصار توسط ن... میاد اما به توسط منظور شکسته شد وقتی شکسته شد دیگه لا ارزش قانونیه صنایالش این یک طرف بحث البته مثل ایران که مرحوم آرضیا فرمودن که بعض رو با مورد حساب کرد انصافا همینطوره ما این بحث را خیلی جای می شروع کردیم از بحث نواهی سیغی لا در زهودر بخصیم انصاف قضیه ما بحثه اصولیه ما مثل بحث ریاضیات نیست که یک جنگل به شما ببین ببینیم سیغی لا تفعل زهودر. چون این سیغی لا تفعل ما تو قرآن هم کم داریم چون رسه به سنت چون بعضیش بانوان حرمه هست بعضیش بانوان پذرالبیده بعضیش بانوان لا پذرالبیده بله لا تنکب مانکه مانک آبا کن داریم لا تفع مالی سندکم داریم اما همه جا بسید لا تفعل نیست لذا ما یک مشکل کلی تو اصول داریم خیلی از موارس اصول اصولی ما نمیتونه تو فقه کار برداشته باشه چرا؟ چون من ارز کردن هر مطلی اصلا این توضیحاتش کراران عرض کردن اصولی این در قرن مثلا سالهای 70 سات که اصول شیخ تذکیه تا سال سال, سال. اصول آمد چیکار کرد اون قواعد مشترک و قواعد عامه که در اکثر از مسئله جدا کردن گفتن تو اصول اما یک نکاتی هم موردی بود اون تو فقه موند ما هنوز تو دی زیادی از عادله نمیتونیم می‌کواعد اصول رو پیاده بکنیم مثلا گفتیم نه در دا احترام داره اما ضرر به طب امره این شو در نظر رحمت نکنه مثلا نگم لاتبه از آنونگیل اصلاف روی نگم لاتبه گم زلال بگی ترجمه می فرمین مشکلی که ما داریم یک مقدار ما بواحث و اصول رو این کارگوش های کلی فقه نداریم ما هنوز توی فقه باید موردی برخورد میکنیم و این برکرده موردی دو نکته داره یکی زوابط فقهی و نکات فقهی و بعد حتی مثلا سیام جمع فقهی و حتی مثلا قبول از پیش ما نه پیش کلا قدم قبول از خواب. و یک نکته هم باز در میگرده به الفاظی که استعمال شده به احتمالاتی که در خود اون الفاظ هست مثلا مثال معروف در ما محنفی. آیه نبه است که بعدش انتصیب و من به جهالتن ذکر شده که این عموم داره شامل اون مفهوم مثلا منعرض می شده. یک مشکلی اینجا غیر ازاله مفهوم یک مشکلی که اصلا به جهاله یعنی چی؟ یعنی عدم علم این یک نتیجه می دهه یعنی عمل صفیحانه غیر اقلاعی این نتیجه می دهه اینا رو ما اسمشی گذاشتیم خیلی من که میگم خیلی مراد اینه تحقیق این که اینجا جهالت آیا سفاحت یا به معنی عدمه این تو بحث اصول نیست اینا موردیه تمام موردیه پس ما تو بحث همونی یک به موردی داریم این رو باید تو فقه و توی تفسیر رو تو اونجا روشن بکنیم و یک مسائل اصولی داریم دو تا نکتی بحث داره مطلب اصولی این خارج کلیس مفهوم به ماهون مفهوم آیا مقدم میشه برای اموم؟ به نظر ما بله حتی در مثال اکلم خدام علمان به نظر ما تعارض آرز مید. چون با اولویت خطیقیه میخواییم اثبات بکنیم حتی آلم فاسق هست چون خدام علمان قید نزده عالم هم مطلقاً به اصطلاح روی خصوصی دیگه برای مقدر میشه. حالا پس اونجا جام قاید به تا آرز شدیم هنهایی در مثل مفهوم مخالفت به نظر ما مفهوم مقدمه لیکن معذال کله علا ما حق نیست هنوز ما مواردی داریم که تمسک به این قاعده و اصولی نمی‌تونیم بکنیم یا یه نکته لفظی داره یا ممکن است مثلا تو اون مسئله عمل اصحاب باشه یا کاربردی بوده یا قرائنه حالیه و سیاقیه بوده نکات خاص بوده یا خصوصیت تعبیری داره با تمام اون خصوصیات رو هم بررسی کرد پس یک بحث اصولی داریم یک بحث به اصطلاح من فقهی و موردی انصافاً ما نمیتوانیم با این بحث اصولی کل فقه رو و کل موارد اختلاف رو برای شما تشریح بکنیم از اول بگیم اده زیادی هنوز موردیه با تو مورد حساب بکنیم لیکن به طور کلیش روی قارده اقلالیش این روی قارده قانونی رو نظر من راه درستیه بحث بعدی رو که اده از اعلام مطرح کردن تحقق الاستثنال جمل متعدده که اگر استثنا بیا، خب مثال هاشم مثال وقتی عثمل علما جالس شعرا مثلا الا الخصا که به هر دو برمیگرده یا به یک خب این یک بحث قدیمی و من عرض کردم از ابحاث و اصول که از سر گرفته شده ایده از ابحاث و اصول اصولا از سر گرفته شده این مسئله جزء مصادیق بارز اینجور دو هم بارز و بارزه بوده. یعنی خود ناظریه بسیار بارزی است که اول در فقه مطرح شد و بعد بنا شد به اصول کشیده بشه. و و اجازه خوب دقت بفرمایید در اینجور مسائل از خود فتوا هم می‌فهمدن این دکتر محترم حضرات ان شاء الله بعد عباراتی از خود فتوای فقیه هم می‌فهمیدن که آیا این جمله رو به همه برگردونده یا به یکی چون عرض کردم وقتی مسائل اول در فقه شد و فقه زدهن بعد که جدا کردن از فقه و اصول تنظیم شد آمدن گفتن که اگر این طور گفتیم این نتیجه در فقه میاد اون طور گفتیم پس معلومه که اون قدوان که اون طور گفته یا سعاده یا تابعین یا فقها اونها هم نظرشون بی بود این نکته رو به حال روش تشکیل میکنه الان ابتذان از ما بر تاکید بیشتر میکنه چون اگر این نکته روشن بشه ما مثلا چون علمای ما در اینجا به روایات تمثق نکردن ما مخواییم به روایات تمثق کنیم توی مسئله حسولی توی مسئله قصودی. به روایات اهل هم تمثق کنیم که بگیم ظاهره بعضی از روایات اینه که استثنان به کل به شمله برمیده به جمعی جمل برمیده این مسئله ایسا قدیل مطرح شده ترهشم در فقه رکشم در فقه خیلی واضحه یعنی ابحام نداره سره که ابحام دن داده اصل بعد تو قرآنه قبل دیگه در روایت باشه اصل بعد در آیات قرآنی و در نتیجه و در نتیجه این شده که فتواه ها هم از اول فرق کرده دو سه مورد ما در قرآن داده یه توضیح عرض میکنم یه آن شب مطالعه کنم ما از کردن کدارن از احکام جزائی که اصلا دستوریرین و جل دو رو چیزا باشه، اهکام جزاایی که در قرآن آنداری مجموع 6 تا جوار آمده شور به خ نی آمده، سرقدر آمده قرض آمده مار آمده، 6 تا از احکام جزادی در قرآن آن آمده. دقدر فرمادید یکی دو تا یا بلکه سه تا از این احکام آخرش استثنا داره اللا لبیین تاب همشون نیستن. هم. جقرد کردیم بعضی روشون استثناء داره چون استثناء داره اولا یه بحث فقهی هم داره ببین کشی مثلا من می کنم ولوین یرمون المحسنان که حد قرد باش تو منم یعطو بر بعث شهده سجل دو هم سمانین جلده یک هشتا تا تازیانه ولا تقبلو لهم شهادت من عبدا دو هیچ شهادت این قبول نه سه. و اولای که همون کاسقون اینا هم کاسقن یعنی امام جماعت نمیشن بشن شاید تلاق میشونن نمیشه این هم این سه تا حکم برای کسی که قرض بکنه شد بعد تحمل این ایلال لبین این ایلال لبین تابو به حرفه میخوره یا نه کهی اثرم داره؟ مثلا کسی آمد زن رو قرض کرد توبه هم کرد اگر گفتیم فقط در آخری میخوره اولای کم الفاسمون این لا تقبل لهم هم ابدا عبداً میمانه هیچ محلی شهادین قبول نیم بلی اون کرد بلی من اعدال ناد شد بلی من از اعدال ناد شد شلاغارم باید بخوره بلی اون توبه کرد شلاغارم باید بخوره بله؟ هنه آن تو ذهن نمیدیم معروف حالا چیزه اینجام نمیشتاهای خویی حالا آن رو پاشه به مواجم مراجعه. مراجع دقلتر میشه شد پس یک نکته، پس معلوم شد هم زکی من کردن اینه از مسادیق بارزی و نظام مثلا فلان تقیه یا فلان تابعی میگفت که انسانی که قرض کرد لا تقبل شهادت رو و ابدا لا تقبل ولو اتاب این یعنی چی؟ یعنی ایشون الا لذین تابو رو به اخیر زن یا مثلا از کلان آقا پرسید یعنی کسی قصد که حالا توبه کرده شلاغش بزنی بله شلاغش بزنی ببینید فتواش اینه شلاغ بزنی این اگر فتواش این بود شلاغ بزنی یعنی چی؟ یعنی برگشته به اخیر پس معلوم شد که این مسئله در فقر مقرح شده فتوا هم دادن بعد درزشو فتوا هم دادن باشن شد فتوا هم دادن و اون نکته اینه که آیا این بر میگرده به آخری فقط یا به همه سه تا حکم در اینجا آمند فجر دو هم سمانین و لا تقبل و لا هم شهاد ابدا و اولایه که همال فاسقون الا لدین تابو پس لما درمان کاملا واضح شد تاریخ مسئله و روح مسئله و از کجا شروع شد و برای چی یه آیه دیگه هم داریم در باب اینما جزا لدین یه الله و رسول و غوی از آن و فلعرض فساده اونم داره بعد در آخر داره ایلا لذین من قبل ان تقدرو عليهم اونجا نقطه داره اینجا ایلا لذین تابوش مطلقه در آیه سرقت هم داره ایلا لذین منتابه بعد از که حالا انشالله اونجا هم یک نقطه ای داره که من فلنت تاس در سه مورد ما توبه داریم یک یک بحث اصولی در اینجا درست شده که بحث بسیار لطیفی که این استثناء به جمله اخیر برمیگرد یا به جمعه جمعه این یکی دو یک بحث فقهی تر از او هم پیدا شده طبق همون ای که من به شما حرف کردم چون اون بحث, بحث فقهی سرپی منحنفی نداره میدونم و که برای آشنایی ذهن شما اصلا من میخوام عمل صحابه و غیر صحابه را از اول این بحث سر این بود که در قرآن این توبه در سفا از حدود آمده. ما بیاییم بگیم که این توبه را تعمیل بدیم در تمام حدود اونم یک وقت دیگری مثلا در زنا توبه نیامده. بیاییم قاید بشیم که توبه تسخه تلحه هست چون از این یک اصطلاح یک نحوی قانونگذاری در اسلامه و یکی از نقاط اساسی اختلاف صحابه اصلا اختلاف اساسی صحابه که جمعه در جاهایی بوده که از پیغمبر سنتی نیامده آیا اکتفا بکنیم به مافل قران یا بگیم نه از این مافل قران ما, ما تأمین میفهمیم یا بگیم نه این سنت پیغمبر شما نرسیده این یک بحث بسیار مهم است من عرض کردم شما اگر میخند در دنیای فقه اسلام الان مثلا کاری بکنید باید به بحث صحابه یعنی خودتون که الان یک سری بین صحابه دارید این مسئله از کجا اختلافات شروع به سری نه، این قلم از سری آقای خویی چی فرماند؟ این خیلی پایین نگه در این ماست فکر می‌کنه خیلی پایینه. بریم این جلوان، چی پیشرو تقریباً زیاده تا آبی سری ما به نزدیکی درگیری که دعواها سری چی بوده؟ پس اون یکی در اصل یا در سنت هست که من عرض کردم در باب رضا ما در کریم فقط خواهر و مادر داریم این در کریم فعال کرد. از سنت پیامبرمون دیگر ما در رضا یا یا هر رمان رضا یا یا هر رمان نکت. این متن نیست، شدیم. اون من الولاه نیست نیست ارضا نیست این متن اولو مشکولم و اصلا در ازن این که مثلا ما در سناس فرید هم برای اموی رضایی داریم برادر رضایی داریم در روایت آمد پس یک چیز در قرآن بود یک چیز در سنت. ما الان بابی داریم در وسایل بابی آقایون خواستن نبا کنم اون بحث فرعیه لیکن خیلی اثر داره خیلی بحث مهمیه چون مهمه من تو بسی بخوام بهش اشاره بکنم که از توبت و توس قتاله مطلقا البته اونجا هم الان براتون روشن شد توی حد محارب داره الا لذین تابو قبل انتقدرو علیه قید داره یعنی محارب قبل از این به دستگاه تضایی کشیده بشی خودش توبه بکنه در قرد خیلی نداره الا لبین تابو برگاه عید نداره. در با به حد سرگاه عید داره. الا منتاب قبل ازالک و بعد ازالک. اون یک اخلصه که این زالک به چی برمیگرده. بگیم که حقیقت از تابو ال... طاب... نداره. اون وقت هرگز وارد این طوره. یک تابو بکنه قبل از این که به دستگاه خدايی بیفته دو توبه بکنه قبل از این که جرم ثابت بشه به دادگاه بره گرفته این زندان تو بازداشت یا توبه کردن این برای مثل الان که به اصطلاح جمهوری اسلامی هست این خیلی ناخه مثلا مرموان حایری اصلا دیمه این نبود که توبه مطلقا مصطفحت باشه حتی تا قبل از اقامه هست خیلی مشکل است. چون این مراحل رو دارن عرض می‌کنن این بحث ریاض اصول خارش حواست من حواستون اون چون خیلی ارزشمنده اون میگه به طوری که این اجرا هنوز خصوص بشه دستوری جان مثلا قاضی بره شک شده تو رو بکنه ولش بکنه مثلا تو ثابت بشه یک قبل از गिरफ्तारी به زندان دو در زندان قبل از اینکه حکم ثابت بشه سه حکم ثابت شده اما هنوز برای زمان اجرا نرسیده چهار قبل از زمان اجرا آیا توبه میتونه مسقط حد در تمامی مراحل بشه یا نهد؟ <تصفيق> یکی از مسائل خلافید ادهی از اهل سنت معتقدم توبه به هیچ وجه مسقط نیست و اگر هم بخواد مسقط باشه مثل اینجا الا لذین تابو فقط خصوص اولای کمال قاسه و الا خلاقه رو باید بخونه شاملش لا هم لاطبق بر رو لاطبق بکنه اینشون هم بحث فقهی داره هم بحث اصولی و های دیگری هم داره این دو تا نکشه خیلی اهمیت داشت من اینجا گفتم که اگه من خواستم مراجعه کنم چه مثلا نکته دومش دو کاربرد زیادی داره اگر بتونید اسفاز بکنیم ذکر کردن در وسائل اصلا بابی داره یک بابی داره در وسار اول باب حدود جلد 18 چاپ قدیم این چاپ جلید هم 28 میشه 27 میشه چون اون دو جلید هم ندارم چاپ جلید شد علا یه حالی در جلید 18 یک بابی داره مرموم صاحب وسائل ابواب مقدمات حدود تو جامال هم همین ابواب برده ابواب مقدمات حدود تو ابواب مقدمات حدود یک بوادست عام در حدود هست یکی همینه که حد توبت تو تسخه تا حد املاع این مسئله در میان اهل سنت هم مشهور شده مشهور به خود رسول الله هم اختلاف این در این مسئله توبه فسخ شده ها دو تا روایت یک روایت از پیغمبر نقل که شخصی آمده گفته من اقامه حد کردم من کارو کردم اقامه حد گفت پیغمبر گفت خیلی خوب دیگه یه جا گفت بعد نماز اقامه شد و بعد نماز همونن که باز اومد گفت من فلان کار کردم توبه داش داره که گفت که میزنه توبه داره عصب شده تو, تو بازش اسم بعد که همونگی هم تو بزو نگیردی همون تو محصولی گفت برد نماز نخونی گفت برد اگر این کافیه این, توبه. این خودش توبه است و این خودش کافیه از اون نقل کردن که مثل مععض مثلا توبه کرد محضولی که, که بر رجمش کرد این مسئلهی ای که توبه توسخته حد املا غیر از بحث قرآنی بحث سنت هم داره دمیان علماء و صحابه هم این بحث اول شد که آیا توبه مسخط حد هست چون این اصل قرآنی هم داره حداقل 6 تا حد ما تو قرآن مثلا زنا تو قرآن هست اما الا الذين تابو توش نداره دقیق فهمید این نیست که در تمام حدود تابو باشه در سه تاش آمده اون سه تاش هم بحث فقهی داره هم بحث اصولی داره صلی الله محمد و من زیده کار کار رو براتون گفتم که ببین دارید چیکار صلى الله على محمد و قالوا يعني في الخدمه هذه يطلبوا بس اكيد ما جي نه، از گاز خب یعنی. میخواد. تاکید گوشه. اصولا در مراجع حالت باید کنه. در مراجع فقهی، در مراجع خیلی خلاصه است. داخل از روز نمی‌کنه. مراجع قرآن نمی‌شه در متن ما کنه. بله دیگه مثلا هر کار می‌کنه همین طول قرآن. الان اینجا معنی بعضی در قرآن بود، دیگه صواب هم نکردم. <متحد> آه، از اون در نه این که آی خوی نایی می چی کفیم کافی من منو به خواستش خود کتب احل سنت هست کتب قدیمشون هست خود شافعی در علام اینو داره مطرح کرده میخونیم آن انشاند من فیلان طرح اجمالی است یعنی اگر میخواییم باید برگردیم به با اونجا اونا هم توشون از بسید تو صحابه بیسواد زیاده ارسشون بیسوادی هم خب بردشون واقعا هم یعنی نورو قران باشه متنفره چون خلافت خیلی کثاری پیش فهمی کرد بعد اون خلا رسیده رازی داره لكن ادعایشون خوش فهم نده این نمیشه این کار تو کسی دریکه عم چیکار اجازه میشه دلان یعنی آقای بیرجردی عقیدش بر این بوده اما تو نوشته های ایشون دیده نمیشه عملا اما ما الان میش باشه یعنی سرشینه وقتی قرآن بوده بعد سنت و صحابه و ده دیگه بقید. این اینهاستی. فهمیدی بله آی تو میروی؟ دستمی پستان تو، در... میمانت تو بیکنیم که پلیت مال. این ما اقیلاشیم بود. گو این کارو نکنه، اینطوره دست بگیرن، راج بکن. این سعیم دو تیزهکن که نسخه دوستی اینطوری گفتم مال ازبایجان، سعیم آشته من دیگه توبه کنم داره میگه این چیز این کار من غلط کردم چرا اصلا قبل دادگاه برسه شب که گرفته بشه میگه توبه کن بشه مثلا با سفر لازم اون چیزی چیه داجج ادعا است میگه توبه کردم از سخط یعنی ظاهر کلام حجتی یعنی باید بفهم توبه رو با روایت دلیل بزنیم خود که اگر زن زانی رو بخویم عقد بکنیم توبه بکنه و توبهش بینه که اونو به زنا فرابخویم اگه قبول کنه توبه نکنه در زندگی مرد نداره این رو قائل بودن بله آها هر زمان حضور یشو میکنم به این راه این نشدین تو بازداشتگاه قاضی مودین راهی و گفتم اینستون رو خاطر رو تکره. مت سوری، مت سوری که نیست که توبه کنه. اگه دو مرتبه گیر زمین توبه نکرده. نشات یه قلدری کردی جنای کلی که تو توبه میکنه. زحد از جای سارا. خیلی اندازه نمی. حالا من چون خیلی مسئله مهم بود رضا گفت اینو اینجا اینجا بحث بگیریم واسه بکنم. چون ما این باب رو داریم البته رواهات باب کمی ضعف ازمال داره اما این باب تو بسائل داری باب این نتوبه توسکتون هم البته این هم یک مشکل ها این مشکل پیدا میکنی چون در آیات حدود تاش توش توبه هست تو همه چیز این هم خوبه یعنی این بحث ها ولی ازام مثل این بحث ها از زمان صحابه میمیشه قاطعا این طور دیگه اصل قرآنی داره؟ و اثر هم داره حالا اگر در حد دقیقه از توبه کن اون موقع از دقیقه از توبه خرص حتی میگن مثلا اون کسی که آیشه به حجاری